الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا كما كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسِمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا ولا يستثنون ولا يستثنون طاف عليها طائف من ربك ف اصبحت كالصريم سلك الله العظيم بيانات ارزشمند و مفید و سازنده و انچه که مایه خیر و خوبیست حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث رئیس حوزه علمیه این العلوم گشت دام الله العالی و حفظه الله تعالی بیان داشتن و همه ما استفاده کردیم فرصت بسیار محدود و کوتاه روز جمعه و با همین بیان اکتفا می شود بیان دیگر دی لازم نیست الله توفیق عمل عنایت بفرماید و شما میدانید که امروز حوضه علمیه توسط کمک مردمی الحمدلله اداره میشوند ما این را تاوانی غرامتی و بار سنگینی برای خود نمیدانیم این را ما نعمت برای خود میدانیم و فرصتی میدانیم که این فرصت را الله تعالی برای ما فراهم کرده که ما خادم دین و ناشر علوم قرآنی و علوم حدیث و علوم شرعی به وسیله همین کمکهای اندکی که داریم باشیم و فردای قیامت جز حامیان دین جز کسانی که تعاون و علی البر و التقوی مصداق حاصل می کنند و مصداق می شوند از معاونین در و از معاونین خدمت دین و ناشر علوم دینی باشیم با همین کمک که جمعه شما می کنید. در رمضان کمک میکنید زکات ادا میکنید ولی اون کمک زکاتی که شما در سال ادا میپردازید و میدهید خزینه های حوزه ها سنگیر شده کفایت نمیکنه که از این رمضان تا رمضان دیگر مدارس مراجعه بکنن لذا الان به طور عموم مدارس دوچار مشکل مالی هستند برای اداره مدرسه و حقوق مدرسین و خرج و حزینه طلاب نان طلاب واقعا با مشکلات جدی رو هستند و این فرصت را الله تعالی به دست شما داده به شما داده شما آنچه که در اختیار دارید تقسیم بکنید تقسیم میکنید حصه برای نفقه فرزند و اهل خود و حسی را برای طلاب و برای مدارس این بسیار فرصت خوبی است انفاق بکنید در حدیث آمده انفق انفق علیک خرج کن ای مسلمان خرج کرده می شود بر تو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بلال فرمود ای بلال نترس از فقر و از تنگی مال خرج کن ولا تخشه و نترس از خداوند که مالت کم می شود کم می شود خرج کن بر تو خرج کرده می شود دو فرشته روزانه نزول می کنن. او اقام آقال علیه السلام دو فرشته روزانه نزول می کنن. و یکی دعا می کند و دوم آمین می کند دعا می کند یکی خدایا آن فردی آن مسلمانی که در راه دین و خیر خرج میکند کند دو او خلف بده یعنی اهز بده و پشت سر مال او مال بده به او فرشته دوم میگه آمی برای انفاق کننده و برای سخی فرشته دعا میکند و فرشته دوم آمین می کند و برای دخیل هم دعا می کند می اللهم اعته منسکن خلفا تلفا اللهم اعته منسکن خلفا خدا انفاق کننده را عوض بده و وعت بده ممسکن تلفا کسی امساک می کند و خرج نمی کند بخل می کند. نقصان بگو خدا نجات بده آمین میگوید فرشته فرشته آمین که امساق کننده به او نقصان و تلف جریمه میشه، جرمانه می شود. خدا پناه بده به راههای دیگر پولش خرج میشه غصب میشود نقصام میشود و حالات مختلفی میآید لحذا ما از آنها باشیم که برای ما ملائکه نورانی ملائکه رحمان دعای خیر و خوبی را بکنند حوزه علمیه علمی علوم گشت امسال هم طبق هر سال طبق معمول برای کمک تقاضای کمک کرده و حضرت استار و شیخ الهدیف همه ما تشریف فرما شدن و ما را افتخار دادن که ما ملاقات بکنیم حضرت را و ما از به این مدرسه هم امروز کمکی داشته باشیم و کمک جدی انتظامات و از که تعیین شدن از هر هرصفه بلند بشوند و کمک جماوری بکنند. و لازم به ذکر هست که در این هفته در گذشت شخص، که در کشور به لقب سردار سازندگی جناب هاشمی رفسنجانی که یکی از خدمتگذاران به نظام جمهوری اسلامی بود آیت الله حاشمی دو دوره ریاست مجلس را در اختیار داشتند و دو دوره هم رئیس جمهور بودند 16 سال در مسنده صدارت و در رئیس امور اجرایی کشور و قانونگذاری کشور بودند و در توسعه و آوادی نقش هم به سزاای داشتن در گذشتن ما در این شخصیت سیاسی و مذهبی را به ملت ایران و بالاخص خانواده، محترم ایشون و مقام رهبری تسلیت از میکنیم. کنیم به هر حال دنیا جای ماندن نیست صاحب مقام صاحب مال هم باید این دنیا را ترک بکنن مال مقام نمی تواند جلوی مر را بگیرد یا مهلت و فرجه ای را برای آن شخص داشته باشد و بقیه مدت زندگیشون را در مسلحت نظام رئیس مجموعه تشخیص مسلحت نظام کشور بودند و به هر حال در این مدت خدماتی هم داشتند و همانطور که هر انسانی دارای کمبودی و کاستی هست. نخیر در زمان ریاستیشون، ریاست جمهوریشون کاستی های هم وجود داشته و خدماتی هم آبادی، آبادی و عمرانی خوبی هم در کشور داشتیم. به هر حال هر انسانی هم دارای خوبی است و هم دارای نواقص هست. هیچ کسی جز از انبیا معصوم نبوده، مبرران نبوده و به هر حال همه محتاجند و محاسبه همه را هم امروز انسان‌ها میکنند و محاسبه کامل را الله تعالی فردای قیامت یا در عالم برزخ میکنند به هر حال مردم ایران استقبال کردند و جنازه بسیار سنگینی بود شرکت و مشارکت مردم خیلی در حد بالا بود میلیونی بود صدها نفر شرکت کردند و این تاسوق به خدمات ایشون بود و به هر حال محاسبه مردم بر ظاهر است و محاسبه الله تعالی بر ظاهر و بر باطن است مردم هم محاسبه میکنند محاسبات نظره های مثبت و منفی را ارزیابی های مثبت و منفی را مردم داشتن و مثبت ها تقریبا بیشتر بودند اما محاسبه که الله تعالی می فرماید از ایمان و از باطن و از ظاهر آن بسیار سخته الله تعالی همه ما را چنان توفیق بدهد که در محاسبه الهی ما به سختی و به گرفتاری روبرو نشویم عالم بزرگ مفتی بزرگ الجزائر محمد شریف که رئیس کمیته افتاع کشور الجزائر بود فرق و تحصیل جامعه قاهره بود ایشون هم در این هفته درگذشتند و به رحمت خدا رفتن به هر حال به خانواده و به شاگردان و محبان ایشون هم تسلیت ارز کنیم. لذا این دنیا دنیای خدا فیزی و بداست اما انسان ما را این درس را میدهد که ما چنان زندگی بکنیم که محاسبه بندگان خدا که شاهدان خدا انتم شهدا الله علی الارض مردم گواهان خدا هستند روی زمین برای هر کسی گواهی خیر را بدهند طیق تشخیص خودشون آن را الله تعالی امید هست که برای او فیصل خیر را بفرماید و برای کسی که مردم گواهی شر را بدهند بسیار خطرناکه نکنه که پیش خدا هم از شروع سقط بشود در حدیث آمده شما شنیده ایده که دو جنازه رد شد و صحابه دربار باره نظر خیر و درباره یک نظر شر را را پیغمبر فرمود وجبت واجب شد ثابت شد این گواهی شما به نزده الله تعالی لزمان و زندگان را مسئولین را و کسانی که زمان امر را دارند به اختیار این هوشدار بسیار بزرگی است که فکر کنند و حساب کنند و زندگی بکنن دو حق بزرگ در دوشه سران کشورها ریاستهای جمهور رهبرهای مردم و ادنا عدناترین فرد هست یک حق الله حق الله حق خدا چیست ان تعبد الله که تراه لم تَكُمْ تراه فَإِلَّهُوْ یراک خدا را فقط بندگی کرد تنها الله را باید بندگی کرد تنها خدا را باید ترستید و بندگی او را و عبارت او را به یک تایی و یگانگی باید انجام داد این حق الله بر بندگان و دوم حق بر بندگان بر بندگانه بندگان هم از بالا گرفته تبایی پایین حق بندگان خدا را هم ادا بکنند حقوقی بنده بر بنده داره کلو راین و كلكم کم مسئولان هر یکی از شما رایی هست چه در حد بالا و حتی زن پیغمبر میفرماد و ول و رائیتون علامت بیتها و هی آنها حتی زن برای خانهش رئیس و مسئول الله تعالی توفیق بدهد خوشدار بزرگیست رئیس های جمهور دنیا رهبرهای دنیا بدانند که این موت جلویان است مردم هم محاسبه میکنند زندگی آنها را حساب پس می دهند و پیش خدا بار حساب پس بدهند خوش به سعادت انسانی که بندگان هم درباره او خود خوب قضاوت بکنند و نظر خوب بدهند و نظر دیدگاه مثبتی نسبت به او داشته باشند و همچنین پیش الله سبحان الله دعا بکنید الله تعالی همه ما را معاف بکنند اگر او نبخشد و معاف نکند هیچ کسی با عمل هم رستگار نمی شود وقت تمام شده لحظا ما از این مسائل باید عبرت بگیریم و توجه بکنیم و بیدار بشویم و خود را بسازیم و اصلاح کنیم خود را و جبران مافات را بکنیم در گذشته کوتاهی کردیم جبران بکنیم توبه بکنیم الله تعالی همه ای ما را ببخشد و معاف بکند